با قسمت دوم از مجموعه پادک های مکالمه انگلیسی برای همه در خدمت شما زبور و دوستان عزیز هستیم در این درس که درس دوم از آموزش مکالمه هست قصد داریم شما را با یه سری از فعلها و اصطلاحات کاربردی در کارهای روز آشنا آاشنا ما طبعا برای ساختن جملاتمون از همان الگویی که در درس اول بیان کردیم استفاده می کنیم. حالا چندتا تا از قیدهای حالت و کاربردی رو برای شما ذکر می کنیم. کلمه early early زودهنگام late دیرهنگام fast سریع slowly آهسته quickly سریع یا به سرعت allowed یا loudly دو تا قید حالت داریم که به معنای با صدای بلند هستند. hard با سختی و سخت کوشی. carefully با دقت carelessly با بیدقتی خب کارهایی که روزمره با اونها خیلی برخورد داریم و افعال بسیار کاربردی هستن اینا هستن. فعل get up یا get up به معنای بیدار شدن از خواب است. I get up early. پویسر من همین جملات رو تکرار بکنی. I get up early. I get up early. I sleep late. I sleep late. من دیر میخوابم. I wash my face. I, man, wash. میشویم. چه چیز را؟ My face. I wash my face. I wash my hands. دست هایم. Hands. Close. Close. از نظر تلفظی با همون فعل close که به معنی بستن هست یک سانه. اما اسپل و نوشتار و املاش متفاوت هست. اسپل میکنم. C L O T H E S clothes به معنای لباس ها I wash my clothes من لباس هایم را می شویم I wash my leg من پایم را می شویم leg L a G خوردن eat نوشیدن drink I eat breakfast breakfast خیلی به اشتباه میگن بریک break فست. یعنی صبحانه. I eat breakfast. I drink tea. خوردن در انگلیسی eat هست. نوشیدن drink هست. در امریکا به جای این دوتا از کلمه have به معنای داشتن و یک معنای دیگه به خوردن هم استفاده میشه. اگر در امریکا شما بگید I have breakfast یعنی صبحانه میخورد. اگر گفتی I have tea این چایی میخورن. از خود کلمات ایت و drink هم میتونید جداغان استفاده بکنید. لیسن گوش کردن. لیسن تو گوش کردن به. I listen to music. I listen to music. من به موسیقی گوش میدهم. I listen to news. I listen to news. دقت بکنید تلفاظ نیوز تلفظ بریتانیایی هست؟ تلفظ news تلفظ امریکایی است. I listen to news. I listen to news. I listen to radio. من به رادیو گوش میدم. فعل watch به معنای تماشا کردن هست حالا میتونه تماشا کردن تی وی باشه. تلویزیون، satellite، ماهواره، movie، فیلم. در امریکا به فیلم میگن مووی در انگلستان میگن فیلم حالا که مووی جمع بسته بشه به عنه سینما هست مثلا گفتید I go to movies یعنی من به سینما میرم I watch TV من تلویزیون تماشونگ Satellite I watch satellite Movie I watch movie فعل بعدی فعل where که تلفظش دقیقا با کلمه کجا یک اما اسپل و نوشتارش فرق می‌کنه. W E A R. I wear my shirt من می‌پوشم. my shirt پیراهنم را خانوم ها از کلمه بلاوس که همون بلوز میگن بلاوس استفاده میکنن آقاین از شیرت I wear my shirt شلوار کلمه پندس P-A-N-T-S I wear my pants من شلوارم را می پوشم I wear my blouse من بلوزم را می پوشم I wear my socks جوراب هایم پوشیدنی هایی که جفتی باشن کلمه جم براشون استفاده می شه ساک میشه یه جوراب ساکس یعنی یه جفت جوراب شو caps shoes age of caps glass, شیشه glasses age شیشه که منظور همون عینکه i wear my socks من جوراب هایم را می پوشم که ترجمه میکنید من جورابم می پوشم i wear my shoes i wear my glass i wear my skirt دقت بکنید کلماتی که با s شروع میشن اونها رو از حالت ساکن باید تلفظ بکنید نه که اونها رو با صدای A تلفظ کنید دقت بکنید اسکرت نمیگیم یا اسکول یا استاب یا استیشن نمیگیم از حالت ساکن سکرت سکرت استیشن، ستاب اسکول. I wear my skirt من دامنم هم را میپوشم یه کلمه هست که خیلی اشتباه جا افتاده کلمه کوت به معنای پالتو هست اما خود کلمه کوت که ما میگیم کوت و شلوار کلمه جاکت هست که اصطلاحان ما تو فارسی میگیم جاکت اما منظور جاکت نیست اگر خواستی میگیم جاکت به اون معنی که در آمیان استفاده میشه از کلمه سویتر. سویتر سویتر سویتر I wear my coat یعنی پالتوام رو میپوشم. I wear my pants شدوار رو میپوشم. I wear my jacket کوت I wear my dress. Dress برای لباس های زنانه مثل منتول لباس های بلند استفاده میشه. I wear my jacket. من کت هم حالا jacket که من کت و pants اگر جمع بشن با هم کت و شلوار به اسطلاحا از suit استفاده میشه. S-U-I-T Suitcase یعنی چمدانی که توش کت و شلوار قرار میکنه. که اسطلاح این وضوش میگن سامسونت. Suitcase I wear my jacket. خب، متازات فلپوشیدن، به دوانيه. Take off از. Take off. I take off my shoes. من کپشن و دارم I take off my dress. I take off my hat. I take off my socks. فل آماده شدن. Get ready. I get ready. من آماده میشم. You get ready. We get ready. ما آمده می شود فعل بعدی فعل leave نه به معنای زندگی کردن تلفظش با leave به معنی زندگی کردن که اسپلش l -E هست متفاوته با صدای کشیده ای e به معنای ترک کردن و بیرون زدن از منزل یا از هر جایی هست اما اگر با کوتاه باشه live به معنی زندگی کردن I live house I leave house من منظر را ترک میکنم <تصفيق> I walk به پیاده رفتن I walk الش تلفظ نمیشه I walk I walk to school من به سوی مدرسه قدم قدمزنان میروم I walk to office من به سوی اداره میروم جیم به عنوی هست مثلا میگم باشگاه I walk to gym I go to gym I walk to work. Work. I walk to university. I walk to university. I walk to university. I walk to hospital. Hospital. Bimara stan. Clinic. Clinic Store. Furushka. Subway station. Yani metro. Subway station. در امریکا میگن Subway Station سکای مترو اما در خود انگلستان از کلمه مترو استفاده میشه. I walk to Subway Station. پس فعله walk به معنی پیاده رفتن هست go به معنی رفتن هست I go to shopping center من به مرکز خرید می روم. I go to school take به معنی گرفتن هست I take a taxi من تاکسی می اگر بعدش از تو استفاده کنید شما میتونید بعدش از تو استفاده کنید <coughs> I go to I take a taxi to من به سوی یا به مقصد جا، مثلا تاکسی میگیدم I take a taxi to امام سکور به سمت میدان امام تاکسی میگیدم I take a taxi to subway station. I go to shopping center. یا میتونیم بگیم. I take a taxi to shopping center. فیل بردی فیلی هست. بانی رسیدن هست. I get home at nine. برای ساعتا هم همیشه از at استفاده میکنه. Come back. برگشتن میشه. یا میتونیم بجاش Return استفاده کنیم. I come back. من برمیگردم. To house I come back to house I come back to office I come back to school I come back to gym I come back to work I come back to clinic I return to house I return to subway station I return to university I return to my office I return to my office If you want to a بسیار با تمرین میکنید سعی کنید که این فایل های صوتی رو که خدمتتون آپلود شده دانلود بکنید حتما آنها رو مرتب استفاده بفرمایید